خب تو اینجا خیلی مختصر مفید ما کردیم جواب بدیم از فوق مسئلی جاودانگی هم شما توضیح دارید بفن میتونید بله خب ببینید حالا اون بعد جاودانگی خودش یکی از مسئله کلیدی که سینما به با عنوان واقعا یک جادو و یک مالی هست ببینید خود عکس خب سینما با عکس شروع شد دیگه یعنی دوربین اکاسی پدر سینماست استودیویش مادری در واقع یک عکاسی کامل عکس متحرک دیگه عکس متحرکه سیرا میخدین عکس یعنی چی خود وارونه دیگه ببین ما نه با لفاظی بازی کنیم منظور سفسته نیست ما میخوایم معنای این واژگون سالاری و ریاکاری در سینما رو حتی در لغت‌ها و واژه‌ها و فنونی که این صنعت رو پدید آورده نشون بدیم که در همه جا حضور داره عکس وارونه خود فوتو در زبان انگلیسی فوتو یعنی کاذب اصلا خود فول یعنی کاذب خلاف واقع خود دوربین عکس برداری ما میداریم که آدمها رو وارونه عکس برداری میکنه ببینیم خود این وارونه فنی. ببینیم اینا همه اصلا و نشانه های این واژگونی هستش که نهایتا به صورت یک فرهنگ سینمایی و مصطبه سینمایی در میاد ببینیم اینا بسیار که ب جنبه فندیش جنبه های لغتشناسیش قبیل واجه ها هرمونیتیک تا خود واقعیتی که و فرهنگی که از بطن این تکنولوژی و سند داره در میاد خب بله ببینید اگر ما میگیم که این بازیگری مکتب در سینما تا حاصلی مکتب سادت بازی خب چرا انسان به بازی افتاد ما گفتیم از کفرش بود چون نخواست مخلوقیت خودش رو قبول کنه و فنای خودش رو در آدم خود بپذیره ها؟ تا به اون روح جاودانه خودش از طریق دین برسه در همین دنیا جاودانگی رو احساس کنه و احساس وجود کنه ها؟ تا از حراس مرگ و نابودی خودش نجات بده ده. به میزانی که خافر شد بشر به قحطی یه نابودی و به احساس نابودی افتراد ها؟ خب پس عکس یک قطع از جاودانگی صورت بشره ها؟ این صورتی قرار خاک بشه پس فردا خب جاودانو شده عکسش هست کامل فیلمش هم موجوده ببینید پس افسون روحی روانی و جاذبه و جادوی مالی عکس و سینما اکس پرستی و سینما پرستی در انسان اون روز. ما دیدیم که مستقیما حاصل کفرشه میزان اکس پرستی و سینما پرستی و ابتدار انسان به سینما و فرهنگ سینمایی از کفرشه انسان سینمایی است انسان کافر به میزانی که انسان ایمان داره جابدانیگی رو در خودش داره برای اینکه رو در خودش داره به میزانی که باور این رو رو از خودش ترک کرده دل خودش رو اون نور جاودانگی و حضور خدا رو در خودش خاموش کرده خودش رو در قهدی نابوگی انداخته حالا آشق عکس تا قاب کنه رو فیلم کنه تا مطمئن باشه که بعضی اینکه مرد و پوسید عکسش باقی خواهد ماند خیلی متشکرم استاد از توضیحاتتون سال بعدی من در مصحبی که به صورت ازاداری هم در جهان مسیحی و هم در جهان اسلام پیدا شده به شکل تفریه و شبیه خانی بوده این رو روز کنید توضیح به که این ها اصلا از کجاست و چه معنایی داره و بعد در روند تکمیلی اون الان ما با سینمای دینی و مذهبی و رو روبرو هستیم که به نظر میرسه نیت چنین فیلمهایی تشویق بشر برای متدین شدن هست لطف کنید توضیح بفرمایید که آیا واقعا این سینما که با چنین نیتی ادعا میکنه که برپر شده آیا تو بشر رو واقعا دینی تر بکنه و اون رو به خدا نزدیک تر بکنه ممنون میشم ببینید این تئاتر مذهبی اونجایی که تاریخ یاد داره و محققین بسیاری در این زمین کار کردن هم مثل بقیه مسائلی که روبست شد اون شکل کلیشهیش به عنوان یک حرفه و یک هنر جا افتاده تاعت مصحبی هم از غرب و از اون پاماده تا اونجای که تاریخ بیاد داره قدیمی ترین تاعت در سوک حضرت مسیح و ماجره های مسلوب کردن حضرت مسیح بوده در اسلام هم ما الله تغییر ثابت شده. هنوز نشانهاش وجود داره. این علم و هایی که در ترضیه امام مسیحیم میره اینها هنوز شکلش اشکال سلیبی داره خیلی از اینها که رنگ و لاب دادن بزیار شکلش رو سرکردن در عوض کنن که خیلی معلوم نباشه که از سر سرداره این یک واقعیتیه با درستی و نادرستیش ما کار نداریم. برحال این شکل سوگواری روگوریشه های اروپایی داره. این چیزه است این نظر شخصی خود من دارم که ماهیت این سوگواری ها هم واقعا روگه های و کافرانه داشته. ببینید ما دووزو میدانیم که نخستین مراسم سوگواری که برای مصلوب کردن حضرت مسیح در غرب در اروپا و دید آمد از خود جوابی بنی اسرائیل بود همانها و روحانیاتشون مسیح رو کافر و ملحد نامیدن و اون رو را کردن و محکوم به اعدام و بعد همون ها گفتن او خدا بود و بلکه پسر خدا بود حالا و برای مصلوب شدن خدا و پسر خدا این همه نمایشات را انداختن بر حال تمامیتش ممکن این نبوده ولی یکی از رگاه های اصلیش رگاه های شرک و کفر و بلکه نفاق بوده ما از سخنی از محسنی نق شده در واقعی کربلا یکیشون پیش گردن نخستین دسته هایی که برای ایشون سو خواهند کرد همون اهلی ای خواهند بود که به موسی خیلال کرده بودند. خب یه نظار شخصی بنده است. این هم دینی و مذهبی هم رویش های واضحی در همین تاعت مذهب و دینی داره مسلمه این چیزه واضحیه که مراسم ها و اون تحضیه ها،, ها شبیه سازی که از مسیح از امامان از واقعی کربلا برسوده بسیاری از علما و فقهای بزرگ این مسئله را تصدیق نکردند. حداقل شک و شبهه و احتیاد وارد کردن در این مسئله نواخر هم بس داغ بوده و همیشه این صحبت بوده خیلی اصلا به کلی رد کردن خیلی ها برحال محدود کردن این یک مسئله ای هست که واضحه اینکه واقعا این تاثر مسئله تا چردی در خدمت مذهب و دینگرای مردم بوده جای شبک و و ساله بسته به این داره که ما دین رو چه بدونیم اگه دین فقط یک نمایش باشه شاید بگیم این تاعترها در خدمت دین بوده ولی اگر دین عمل سالی باشه اخلاق سالی باشه تقوا باشه نمیشه این تاعترها رو در خدمت دونست یا عین دین دونست قدره بسیار شب کوش و پر سوال هست فیلم مثلا نگاه کنید ما میدانیم از قدیم تا به امروز بسیار و اکثر کسانی که این تااس ها رو می ایف ایفا میکرد را می کردندند نقششه رو ما میدونیم که آدم های ساده و ساده می نبودند خیلی از اینها دا مورد خ هم بر آدم های فاسقی بودن که این نقششه رو را این می کردندگه انسانی فاصل نمیتونه القا کنند دی باشه حتی اگر کلمات و نمات های دینیام داشته باشه این چیز امکان نداره ذات نایافته است هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش یه کافر یه فاسق نمیتونه مبلغ دین باشه هرچند که حرفای دینی بزنه مبلغ نفاق میتونه باشه ولی نه ایمان دین ببینید سینمای محسن به سینمای دینی سینمای ارفانی یه مقدسترین شعبه سینماست و جدیترین شعبه سینما هم هست شامل این قضیه میشه <تصفيق> و به نظر من اتفاقا از همین درب و با توسط به این جنبه از سینما هست که سینما تونسته خودشو جایگزین مذهب کنه و کوت انلق بزنه و برای خودش رسالت قایل بشه ما میدونیم امروزه دوزه بسیاری از بازیگران و ستارگان سینمایی و خالگردان ها ادعای پیغمبری و ادعای ناجی دارند ما این احساسات رو ادعاها رو کم بیشتر بیش در همه جای دنیا شاهد هستیم خیلی ها برای خودشون کشف و کلامات و وحی و الهام قائلند این آقایان این جنابان حالان که بسیاری از اینها آلا همه نه خیلی از این رو مدر در دنیا آنهایی که واضح شده زندگیشون ما دیدیم که اصفه های فسق و فجور و طبعکاری و بلکه جنون و حتی جنایت هم بودند این کسانی که میخوان سینما رو تبدیل و مذهب و رسالت سینمایی و سینمار مونجی حالا بشریت کنند به ما از این چش سینمار رو به عنوان دجال و این سینماگران رو به عنوان دجالک ها ما میتونیم شناسایی کنیم البته همه ممکن اینطور نباشن نیستن ان شاء الله ولی خیلی اغلبرا اینطور بودن ببین مثلا ما در غرب خب مثلا کسانی مثل تارکوفسکی مثل این ها خدایان و پدران سینمای جدی و سینمای رسالتی و سینمای محنوی و فلسفی هستند خب خود نگاهی به زندگی همین ها نشون میده که این ها آدم ها اساساً آدم های نهیلیست بودند این ها تداری روشنفکرانی با اون بست رسیده شده و نهیلیست بودند زندگی اینها نشون میده سایر آثارشون نشون میده این نیهیلیزم در خود این آثاری که اینها خلق میکنن به عنوان این آثار رو ما خلق کردیم دو بشریت روح بشریت رو به خدا برسونیم این درودتن واضحه مثلا نگاه کنید تارگسکی پدر سینمای عرفانی حساب میشه در جهان بوداستو کسی نیست شاکاری همه آثارش باز اثر است به اسم که کسایی که این رو دیده باشند که در ایران هم وارد صورت شده ما می‌بینیم که در این اصحری به اسطلاح عرفانی قهرمان این فیلم دا یک حکیم یک عارف حتی یک قدیس یک مسیحاتوری نقش شده که این آقا در این حال یک بیماری روانی است، یک آدم رنجور و دیوانه است اصلا البته در این فیلم بسیار سعی شده که حتی براش کشف و کرامات و الهام هم مقابل بشن گوییم که دارای و ولی عارف هست و بعد نهایتا در آخر فیلم این آقای منجی و ناجی می‌بینیم که در مقابل کلیسایی در حضور گلهی از هار و حدهی از دایم و و دیوانگان پایین شهر خودش رو به آتیش میکشه برای نجات بشریت آثار درگمان همینطوره بین اینها این سینماهای افسانی سینما سینماهای نیلیستی و های خودکوشی این خودکشی حاصل اشد بازیگری انسان که انسان در بازی خودش دیوانه میشه خب حالا ما بگیم bọn مسلمان خب ما اینکه انکاری نیستیم ما مؤمنانیم سینماگران ما مومنن فیلم فیلمهای دینی از ائمه از پیامبران اینها به حال الهیایگری دین در میان مردم میکنه ببینید ما بیست پرن سال شبانه روز داری تیلویزیون های ما فیلم های دینی نشون میده دیگه مهم. ها هایا مردم دینی تر شدن دینیتر شدن نشانه دینی شدن نماز خوندن اگه خب بدی قبول داریم اگر نشانه دین و ایمان عمل صالحه سلامت عزت ادب شرافت خرمت ما میبینیم که و نمیخوام همه اینا گردن این فیلم ها بندازیم ولی این فیلم ها به عنوان ارکان فرهنگ تصویری که مردم شبان روز بخشی مستمر از ساعت عمرشون پای این فیلم های دینی میگذارن اینها رو اگه دینی تر باشه چرا کافرتر و فاسقتر و دیوانه و رو کافرتر کرده تا جایی که مردم ها کفر کفرگویی میکنن جدا پس ما میبینیم که در خدمت دین نبوده بلکه زد دینی بوده بلکه ابتدایی هر حد اعتقاد و باورهای دینی رو هم پوچ کرده. چرا برای که ما در صحبت و مقدماتی که داشتیم نشون دادیم که ذات سینما برای واژگون کردن واقعیت‌ها ها و حقیقته بس سینما ذاتا نمیتوانه مروج دین و ایمان و معرفت و ارخان باشه نمیتوانه این صنعت این هنر نمیتوانه حتی اگر اون کارگردان و هنر پیشهاش هم همه قدیس باشن که این چیزی ممکنی است مطلقا محال است مثال میزنه یه مثال زنده که ما در هستیم. یکی از دینی ترین و پرگیرنده فیلمی که بعد از انقلاب ساخته شد فیلم امام علی بود یک سریالی بود که خود بنده شاید تنها سریالی بود که رو پیگیری کردم تماشا کردم و بعد آثار روانی این فیلم رو در مردم شاهد بودند. همه ما شاهدیم ما دیدیم که مجذوب ترین و افسون کننده ترین و دلرباترین رباه این فیلم امر بودند بودند که این ملجه و خانم بود. بله. نفخت هنگیسته هویت کی بود مقدسته این شخصیت فیلم بود که صورت داشت و اون ابوزر بود هرکس از رو در فیلم بیدید اونو به عنوان بیماری روانی اینکه آقا حقش بود که اینو کردن و کشتن اون که دیوانه زنجیری پرجازه بسری نشن مآوی و و اینها بودن و خالید ببینید، این اثر به نظر من این فیلم در کافر کردن مردم نقشی داشت که کل مهواره ها در طی این 20-25 سال مهواره های پرنگرافی انقدر نقش نداشتند. ببینید این بهترین آثار دینی هستند. ببینید سادندگان این فیلم اون سردم کمچن قصدی نداشتند بسیاری از این رو مرز نزدیک میشناسم دستندار کاران این فیلم رو ودمه های متقیدی هستن. منظور اینه که سینما ذاتش بر کفر کفره سینما نمیتواند هیچ حقیقتی رو بلساند به عنوان رسانه در غسان نیست یک دجال است دجالی بسیار و الهیده هیلهاش قلبی ترین و دلبرانه ترین هیله ما در واقع بارستی درک کنیم که سینما به عنوان دجال لکیفترین دجال تکنولوژی و از دروغ و دروغ پردازی در این در واقع باستی اینجا واقعا ابلیسیت سینما رو مبارسی نشون بدیم. ببینید بخش عظیمی از فیلم هایی که ساخته بشه فیلم های عاشقان هست. آیا این فیلم ها عشق و محبت رو در مردم ترویی کرده؟ نباید دسته فیلم هایی که در جهان ساخته شد فیلم های عاشقانه بود. ها؟ هر اروپای همه امریکایی هزار باره بیشتر از جهان سلو میاد فیلم های عاشقان رو دید اینکه اگر ما در سینما خودمون فیلم های با محبت عاشقانه درست کنیم و این را رایت کنیم ما دیدیم تجربه این دو فیلم در ما هم بهتر از اونجا نبود بیمین این قضیه برمی میگرده به ذات و ماهیت سینما برمیگرده. این مسئله امور تربیتی، آموزشی خب ببینید ساعتی قابل توجهی از تلویزیون صرف برنامه آموزشی کودکان و جوانان میشه آیا واقعا در هوش و تربیت جوانان و جوانان اثر مثبت گذاشته یا اثر محقوص گذاشته یا فقط قول بچه های پخمه مدعی متکبر دیوانه فقط پدید آورده بچه های کاملترش بچه های و کامپیوتری ما میدونیم یه مش قول روانی هستن که بسر این زنجیری میشن و جانی میشن یعنی ابتدایی حد شعور و تشخیص واقعیت از رویا رو سینما و رسال های تصویری از بچهها گرفته امریکا اروپا نتیجهش داره پست میده کودکان جنایتکار محصول برنامه های آموزشی و تربیتی هستن ما میگیم خواه حالا اگر فیلم های جانی رو نشون ندیم فیلم های رو نشون بدیم بچه با تربیتتر میشن. نه خیر. اونها از اول فیلمهاشون خیلی ملوس بود. دو سه دهه اخیر فیلمهاشون تمام جنایت بار شده. اینها چندین دهه اینها از اول که سینما اینها جانی، جنایتکار و پورنوگرافیک که نبود که اینها واسه بیاد داشته باشیم مم. که اونها هم سینمای بسیار ادیبانه و ملوسانه ای رو نزدیک یه قرن پشت سر گذاشتن، شدن این حالا ما هم با رایت یک سری مسائل شرعی لزوما نمیتونیم این ذات مالی خلیایی و دجالی سینما رو مهار کنیم امکان نداره تجربه ما بعد از انقلاب که فرهنگ حاکم بر مردم ما و بر حکومت بر دین بود نتونست این ذات دجالی و واجگونسادار سینما رو مهار کنه و اثری مثبتی از آن تولید کنیم من نم از اومان سآل آخر من فکر میکنم کمی هم باید در مورد سینمای مستند صحبت بکنیم به این دلیل که رسانه های یکی از ادعاهایی که داره این هست که اگر از بابهایی دیگه انسان رو به فریب مبتلا کرده حداقل به واسطه ای این فیلم های مستندی که تقیم میکنه که با نیت آگاهی دادن به مردم هست در هر زمین ای در اینجا حداقل نقش مثبتی رو ایفا کرده و از این باب نمیتونیم این سینمای مستند رو که به شکل فیلم‌های علمی فیلم‌هایی که کلا در جنبه‌های متنوع الان درست میشه دیگه این نمیتونه با امر واژمون سالاری و دروغی که شما فرمودین ذات سینماست هماهنگی داشته باشه من از شما خواهش می کنم این مسئله رو بیشتر توضیح بدید و کلا نقش سینما در جهان سیاست اقتصاد و غیر چیست و در پایان سینما چه تأثیری در سرنوشت بشر داره و بشر امروز رو به کجا خواهد برد متشکرم گفتیم که سینما از تاف بود و دو بنیاد یا دو قه داره ترراژی کمه خود خداایی و خود مسخری گفت تافنی نمایش خود خداایی انسان، این خود مسخرگی در شکست نمایش خود خودداایی بدید آمد از بطن خود مسخرگی نهایتان خودبردازی و خودگوشی که بدید میاد. امروزهی سینمای خود و آدمکشی حرف آخر و پایان خط سینماست. سینمای دنون و جنایت این روند رواند تدریجی شکل گیر بله دقیقا سینمای هنوز فلسفیس خودکشیشه سینمای آمیانه ترش آدم ببینید این قضیه و باگر داریم به واقعی زندگی انسان آیا به نظر شما تاعتری ترین و غیائی ترین و نمایشی و نمادین ترین مراسم، بشری چیه بر روی زمین؟ عروسی و عضایی هست یعنی سیمایی تراجیک و کومیک واقعا تراجیک و کومیکی در عضایی ها و عروسی هاست که انسان ریایی ترین کردارها رو میبینه این همه حزینه برای دقیقا مثل حزینه که برای فیلم های مجلل خرج میکنن هرچه که میخوان این فیلم دروقی باشه بیشتر خرج داره دیگه عروسی و عزالی های پرخرش که این روزا هم پرحدینه میشه ریایی بودن این قضیه رو کامل تر می ما میدونیم که ریایی ترین و غیر واقعی ترین و دروقین ترین رفتار ها در عروسی و عزالی ها خودش آشکار پس ما ببینیم که این تاعترو سینما در زندگی واقعی هم حضور داشته قبل از که سینما وجود بیاد اینها بوده این رابطه بین واقعیت و سینماست این نقطه بسیار قابل تنموده خب عنوان یک جنبندی از صحبت این جلسه ببین ما گفتیم که تمدن یونان باستان مهد کل این تمدن مدرن در آنجا تئاتر، دموکراسی و نظامیگری و اندیشه های لایک و ماتریالیستی تو این تمدن پدید پدیده برد این موزه رابطه بین سینما و دموکراسی. تو شما نگاه کنید؟ سینما گفتیم یک وحش غالبش احساس خودخداییه خودخدایی حالا که این پاییمتر خودشاهی یکی از مهمترین بستر این دمکراسی های نمادین و نمایشی سینمایی دموکراسی ما بینیم یه نمایشه هیز آدم حقیقی باور نداره که اینا دموکراسیا ها باور مردم صداریز. زیر فرهنگی دومکلاسی امروز سینما بوده به عنوان رسانی ای که احساس خودشاهی به هر کسی بده که هر کسی خواه شاهی دوران شاهنشاهی به سر آمده حالا همه شاهند حضا... همه, همه شاهند حالا شاهان به صف بیان رعی بدند این احساس خودشاهی که این دموکراسی رو پدید برده این احساسی که در این رعی ها در این دموقراسی های بازاری که در دنیا که ما میبینیم واقعا مردم سالاری نیست شاه سالاری است که بستر فرهنگیش سینما و تصویری است، تصویریست عنوان احساس خودخدایی و خودشایی خب وجه این تمدن گفتیم یکیش تاعت بود دموکراسی و نظامیگری تسلیه خب ما میبینیم دیگه این روز هالیوود در آمریکا. کولارکای هستی، دموکراسی و هالیوود با همند و دنیا رو دارن رهبری میکنن. هالیوود کولارکای هستی و دموکراسی. یک نماد نمایش قدرت جهانی، بمبهای اتمی، دیگه نماد خودخدایی همه افراد بشری، نمایش تئاتر خودخدایی ها؟ و کارخانه این ایدولوژی کده هالیووده ما میدونیم که امروزه هالیوود در سرنوشت ملت آمریکا و نهایتا مردمان جهان نقش هالیوود از خود سازمان سیاه هم اساسی تره از خود پنتاگون هم نقشش انیختر و اساسی تره خود هالیوود این رو هر انسان می میدونه که سینما و رسانهای تصویری داره سرنوشت کل بشری از رو داره لغم میزنه یعنی این مالی خولیا این جا دو بسیس بسیار ازاسی و امیق بیشتر از این جای صحبت نداره ما فقط اینا چیترار رو فقط میخونیم ببینید ما باستی سینما رو رسانهای تصویری رو و این مالی خولیا رو و این مسخرگی و خودفریبی رو که اشد این خودفریبی از قدم روی سینما خودشونشون میده رو بفهمیم چرا بشر امروز از هر زمانی خود فریبتر شده سینما به عنوان یک ضرورت واجب وجودی برای امکان ادامه بقای انسان آخر زمانی که فقط شاهد تبایی عذابها و رسفایی هاست خودش یک ضرورت دوزخی عرصه آخر زمان اگر عرصه رسفایی ها و برونفتنی نفسه آشکارسازی طبقات ظلمانی نفسه آشبارسازی جهل و جنون نفس به واسطه تکنولوژی هاست واسطه سند هست قلمرو رو به پوچی های انسان و عذاب های حاصل از این برونفک نیست پس واقعیت امروز بشر هزاران بار ترختر و سیاتر و مرگبارتر از قرون گذشته است و بشر میخواد چشمش رو ببنده به یک فراموش ای بره که این واقعیت رو نبینه آن فراموشخانه خانه سینماست سینما به مفهوم رسانه تصویری یعنی تلویزیون از آن سینما خانگیست است دیگه همه سینمایی هم. ببینید رفتارهای زناشویی تماما سینمایی است بچه ها رو نگاه کنید آدم تو خیابون نگاه کنید حتی دولت مردان نگاه کنید همه دارن فیلم بازی می کنند. اگر قبلتر انسان در یک سری دقابل خاصی مجبور می شد اینمای خاصی بازی کنه، آقا دیگه خودش در تئاترای خودشان خودشان برای خودش داره فیلم بازی می‌کنه. اینه که گفتم. هر گلی بنا خودش داره فیلم بازی می‌کنه در تئاترای خودشان. هم. همه سینما، همون همه نویسنده‌ها و همه در نقش‌هایی بیرون که دارن بازی می‌کنن، گم شدن و این نقش‌ها رو باور کردن. اینه اصل مالیخولیا و جنون جهانی. سینما که نمرو تولیده این جنون جهانی، و درینام این جنون جهانی رو ما واسه درک کنیم، حاصل گریز انسان از واقعیت ترخ و دردناک پوچیهای انسان آخر زمان هست و سینما به عنوان فراموشخانه انسان مدرن هزاران بار قدرتمندتر از هرویین و جادوی سیاه داره عمل میکنه در واقع میشه گفت سینما هرویین و مورفین طبقات متوسط شرقی است هایدگر استودیوهای آلمان تلویزیون رو میگه قلب روح ظهور سینما و تلویزیون به درزخ یعنی این یعنی پوچیه یک انتظار مطلق بی پایان هیچی پس سینما و تلویزیون قلب روح ظهور برزخ مفهومی است بسیار واقعی این یعنی قلب روح ظهور هیچی و پوچی یک سراب محض یک رویای محض که کمترین سر و در واقعیت نداره شما فهمیدین سینما مستند بله حالا اگر سینما مستندی الان دیگه وجود نداره دیگه اوایل شاید کمی وجود داشت الان همه چیز فیلمه اما این سینما مستند کار می میدونن که اینم خودش یک نقش آفرینی است کجاش مستنده اونم بر اساس سیناریوی در رو میشه سینما مستند واقعا دروغی نیست طرفو مفته وجود نداره الان دیگه وجود نداره بعضی سینما مسترد به عنوان یک سرگرمی هم سر میتونه حالا سرگرمی خیلی خطرناک نباشه که بوده ولی باشه احساسی تر از سرگرمی این حرف یعنی خطرات به قدری جنون آور بر بنیاد, بر... بنیاد برندازه یا برس سینما با عنوان رسانه خبری کدام خبر؟ اخبار هدایت شده در سمت منافع مالی کوریاهی اول قدرت ها که این خبرها نسان گوش نده محصولتر اتبابند این خبرها گمراه کنندند نه بیدار کنند این خبرها با خبر کننده نیستند این خبرها دامن فریبند، این رو هر اینسان آگلی میتونه این اخبارها همه هدایت شدند، این اخبارها هم که پخش میشه همه بر اساس یک سناریوی اصولی از قبل که این اخبارها کی در چه وقتی چه زمانی اصلا پخش بشه یا نشه بر چه شکلی به چه صورتی بخش بشه؟ در قبال چه اخبارهای واقعی تری اینا پخش بشه تو اون مخفی بشه اخبار ضد اخبار اطلاعات ضد اطلاعات در واقع ما این میبینیم که این حتی این رسان های تصویری به عنوان کانون های خبر لسانی در واقع اطلاعات و اخبار ضد اخبار و زده اطلاعات اخبار نمیدن تا مردم به همه چی میگذاره برای این که مردم نه به هر کسی کم دقل کنه درک می‌کنه ببینید جادوی مالی های تلویزیون رو یک مثال کوچکی میزنم و این صحبت رو تمام میکنم یک کسی که پای تلویزیون یا فیلم سینمایی نشینه، با خودش چه میکنه تو خودشون برید تمام هوش و حواس و اراده و آگاهی و اعصاب خودش رو بسیج میکنه در خدمت تخدیر خودش تا بتونه طور آنچه را که میبینه واقعیت فرض کنه. میشه درسته؟ اگر انسان چنین نکنه، اصلا مگه میتونه بیشتر فیلم میذن باش رو کنه، تام کنه؟ اصلا لذت نمیده. اصلا لذت نمیده برای لذت تماشا اون نمیکنه. این درسته؟ مجید. پس کسی که پای فیلم میشینه، این به طور ناخودآگاه قطعا بسیج شده برای کور کر و دیوانه کردن خودش. تا بزنه این چیز غیر واقعی رو واقعیت بفند همونطور که تلاش میکنه کلی واقعی زندگی روز رو اصلا نبینه اون رو خواب و خیال بپنداره ولی آنچه که رو صفحه تلویزیونه این رو واقعیت بفنداره از هم یک مثال میشه فهمید که چکونه سینما و این رسانه تصویری قلم رو به اشد خودتختیری خودفریبی و خود خوددیوانسازی و مالی خوریه قابل. به کجا داره میبره انسان رو؟ اصلا دیگه جای پاسخ نداره که به کجا داره انسان رو میبره واضحه که داره به کجا میبره انسان رو اینجا دیگه سوالی مطرح میشه که دیگه سوال سینمایی نیست سوال مربوط به سرنوشته بشری این بشر داره به کجا میره تکلیفش چیه چه باید کرد چه نباید کرد این ما بحث دیگری است و این واضه که انسان در پای تلویزیون اقل و شعور و هوش و حواست و معرفت خودش رو و روح خودش رو به پای این آهن پاره قربانی میکنه و به دست خودش رو قتل میده